نه هر که چهره برا فروخت دل بری داند نه هر که آینه سازد سکندری داند نه هر که طرف کلاه کجنهاد و تند نشست کلاه داری و آینه سروری داند تو بندگی چو گدایان به شرط موز مکن که دوست خود روش بنده پروری داند خلا مهمت آن رند آفیت سوزم که در گدا صفتی کیمیا گرید آند وفا و عهد نکو باشد عربی آموزی وگر نهر که تو بینیستم گرید به باختم دل دیوانه و ندانستم که آدمی بچه شیوه پرید آند هزار نکته باریک ترزمو این جاست نهر که سر به تراشد قلندری داند مدار نقطه بینش ز خال توست مرا که قدر گوهر یک دان جوهری داند به قد و چهره هران کس که شاه خوبان شد جهان بگیرد گرداد گستری داند ز شعر دلکش حافظ کسی بود آگاه که لطف طب و سخن گفتن دری دامد